در، بیان که زربهی به آن زده باشند، چهار تاق باز شد. ناشناس سرش را بلند کرد، گردان و سرجوخه زه را دید که توی درگاه ایستاده است. سرجوخه زه راننده کمکی جیپ ناشناس بود و توی پنج رشته عملیات جنگی، از روز آغاز عملیات، پیوسته همراه او بود. سرجوخه زه در طبقه اول زندگی می کرد و معمولاً هر وقت دست شایعی ای می میشنید یا ناراحتی پیدا می کرد پیش او میآد. مرد تنومند خوش اکسی بود که 24 سالی داشت. در دوران جنگ یک مجله ملی عکسش را که در جنگل هورتگن گرفته شده بود چاپ کرده بود. توی عکس در هر دستش یک یکگووقمون روز شکر گزاری دیده میشد و دیافش نشان میداد که زیاد هم از روی اجبار عکس نیانداخته است. از ناشناس پرسید: داری نامه می نویسی؟ بابا اینجا که آدم دلش می گیره؟ همیشه ترجیح میداد پا به اتاقی بگذارد که چراغش از سقف آویزان باشد. ناشناس روی صندلی که نشسته بود چرخید و به او تعارف کرد که توی اتاق برود و گفت که مواظب باشد پا روی سگ نگذارد روی چی؟ آلویو میگم درست جلوی پای کلی، چراغ کافت روشن کن؟ کلی کلید چراغ سخف را یافت و روشن کرد. سپس عرض اتاق محقر را که اندازه اتاق پیش بود پیمود و روبروی میزبانش روی لبه تخت نشست. از موهای اخرائیش که تازه شانه کرده بود و آب زده بود تا خوشحالت بیزدد، آب میچکید. از جیب راست پیراهن زیتونی رنگش، سر یک شانه و یک خودنویس مثل نظامیان دیگر پیدا بود. نشان کماندویی بالای جیب چپش دیده میشد. مقررات حق چنین کاری را به او نمیداد. و نیز نوار مخصوص نظامیان مستقر در اروپا مزین به پنج ستاره برونز، به جای یک ستاره نقره تنها که با پنج ستاره برونز برابر بود، و نوار سابق شرکت در نبرد پل هاربر. آه، امیقی کشید و گفت. این جمله بی‌معنی بود. ارتش بود دیگر. از جیب پیراهنش یک پاکت سیگار بیرون آورد. با انگشتان به روی آن زد و سیگاری بیرون آورد. سپس پاکت را سر جایش گذاشت و دکمه برگردان جیبش را بست. دود سیگار را که بیرون میداد با نگاهی توهی اطراف اتاق را برانداز کرد. دست آخر رادیو نظرش را گرفت. گفت: ببین دو دقیقه دیگه این نمایش مزخرف از رادیو پخش میشه. نمایش با پپ و دیگران میگم. ناشناس یک پاکت نوعی سیگار را باز کرد و گفت که الان رادیو را خاموش کرده است. کلیبی آنکه احساس ناراحتی کند به ناشناس که سعی میکرد سیگار روشن کند خیره شده بود. بحت زده گفت وای دستاتو نگاه کن. پسر تو رعشه داری. خودت میدونی؟ ناشناس سیگارش را روشن کرد سر تکان داد و گفت که کلی چیزی از زیر چشمش دور نمیماند. ببین شوخی نمیکنم. تو بیمارستان که چشمم به افتاد چیزی نمونده بود از حال برم حالت نعش پیدا کرده بودی چقدر از وزنت کم شده چند کیلو میدونی نمیدونم راستی من که اینجا نبودم نامهی برات رسید لورا نامه فرستاد لورتا دوست دختر کلی بود. آنها خیال داشتند در اولین فرصت عروسی کنند. دختر نسبتا به طور مرتب برایش نامه می‌نوشت. نامه‌هایی که پر از اظهار عقیده های نادرست و هایی بود که سلامت تعجب در آخرشان به چشم می‌خورد. کلی در سرتاسر سر جنگ همه نامه‌های لورتا را با صدای بلند برای ناشن از خوانده بود. با اینکه ها خصوصی بود. در حقیقت در نظر او هرچه چه خصوصی تر بهتر دیگر برایش عادت شده بود که پس از خواندن هر نامه از ناشناس بخواهد که در جواب نامی لورتا تره نامه لورتا طرح نام را بریزد به نامش شاخ و برگ بدهد یا چند کلمه گیراب فرانسوی یا آلمانی در آن بیاورد کلی با بی تننایی گفت بله دیروز نامی از طرف اون رسید پایین توی اتاق منه بعد بهت نشون میدم. بلند شد و راست روی لبهی تخت نشست. نفسش را نگه داشته آراغی طولانی و پرسه دازد. او که به نظر می هنوز از این کار حالش جا نیامده دوباره دراز کشید. گفت برادر خاک بر سرش به علت ناراحتی کفل از نیروی هوایی اومده بیرون. کفلی به این اندازه داره بی پدر و مادر. دوباره بلند شد نشست و باز سعی کرد آراغ بزند. اما نتیجه چندانی نداشت. آن وقت توی چشمهایش برخی دیده شد و گفت ببین تا یادم نرفته اینو بگم که قرار ساعت پنج فرد و صبح بلنشیم با ماشین بریم هامبورگ یا یه جای دیگه باید برای همه افراد نیمتنه آیزنهاوری بخریم ناشناس با دشمنی براندازش کرد و گفت که نیمتنه آیزنهاوری نمی خواهد کلی شد و نسبتا رنجیده خاطر گفت ای بابا اینا چیزای که چیزای بدی نیستن خیلی قشنگن. چرا نمیخوای؟ دلیل نمیخواد ما چرا به ساعت پنج از خواب بیدرشیم؟ جنگ تموم شده این کارا دیگه برای چیه؟ من سردر نمیارم همینقدر میدونم که پیش از نهار باید برگردیم چند پرسش نامه جدید رسیده که پیش از نهار باید پر کنیم از بولینگ پرسیدم که چرا امشب اونها رو پر نکنیم آخه پرسشناه های مزخرف روی میزش بود. اما این بی پدر و مادر هنوز خیال نداره پاکت ها رو باز کنه. هر دو با احساس تنفر از بولینگ لحظه ساکت نشستند. کلی ناگه هم با علاقه بیش از پیش چشم ناشناس دوخت و گفت: ببینم خبر داری که اون طرف صورتت از بالا تا پای میپره؟ ناشناس گفت که خوب خبر دارد و آن طرف صورتش را که میپرید؟ باده از کلی لحظه‌ای به او خیره شد و سپس مثل کسی که خبری استثنایی داشته باشد با چهره بشاشی گفت به لورتا نوشتم که تو دوچار ضعف اعصاب شدی جدی؟ آره به این موضوع خیلی علاقه پیدا کرده توی رشته روانشناسی داره تخصص میگیره کلی کفش به پا روی تخت کاملا دراز کشید میخوای بدونی چی نوشته؟ نوشته کسی از جنگ و اینجور چیزها ضعف اصاب نوشته احتمالا تو از همون بچگی شخصیت متزلزلی داشتی ناشناس از را سایبان چشمایش کرد ظاهرا چراغ بالای تخت آزارش میداد. و گفت که اظهار نظر لورتا درباره مسائل همیشه اسباب تفریح او بوده است کلی سرش را بلند کرد نگاهی به او انداخت و گفت گوش کن بی پدر و مادر اصحار نظرش نشون میده که خیلی بیشتر از تو روانشناسی سرش میشه ناشناس گفت یاد کنه اون پاهاتو که بوی گن میده از روی تخت من بذار پایین کلی <ملا> چند ثانیه پاهایش را تکان نداد چند ثانیه ای که با خود میگفت چه کاری به پاهای من دارد سپس چرخید پاهایش رو روی زمین گذاشت و بلند شد نشست بس با میرم طبقه پایین توی اتاق واکر رادیو رو روشن کردن اما از روی تخت بلند نشد ببین همین الان تو طبقه پایین داشتم به این پرنشتین بی پدر و مادر می گفتم. یادت میاد اون روزی که من و تو داشتیم با جیپ می رفتیم دو ساعت تمام زیر رگباره گلوله بودیم و اون گربه لعنتی که وقتی تو اون گودال دراز کشیده بودیم پرید روی کاپوت جیپ و من با تیر حسابش رسیدم یادت میاد آره، باز موضوع این گربه رو پیش نکش کلی، حال منو به هم میزنی اصلاً حوصله شنیدنشو ندارم باشه، میخوام بگم این موضوع رو برای لارتا نوشتم اونو دانشجویان کلاس روانشناسی در بحث کردن تو کلاس میگم استاد بی و مادر رو خلاص همه حضور داشتن به من ارتباطی نداره حسلی شنیدنشو ندارم کلی نداشته باش میخوای بدونی چرا به طرفش تیر انداختم میخوای نظر لورتا رو بدونی نظرش اینه که من موقتا عقلمو از دست داده بودم شوخی نمیکنم از بمباران و این چیزها ناشناس رو را یک بار توی موهایش فرو برد سپس باز چشمهایش را از نور چراغ پوشند تا عقل تو از دست نداده بودی فقط انجام وظیفه میکردی تو اون گربه رو مثل هر کس دیگه تو اون شرایط مردونه از پا در آوردی کلی با بدگمانی نگاهی به او انداخت این مزاخرف ها چه سر هم می اون گربه جاسوس بود خواه ناخوا باید به طرفش تیراندازی میکردی. اون گربه آلمانی کتوله و زیرک بود که پالتوی خز ارزونی پوشیده بوده بنابراین این کارتو وحشیانه یا ظالمانه یا کسیف یا حتی کلی لپایش را به هم فشرد و گفت، مرد شورت تو ببرن، تو همه چیز به شوخی میگیری. ناشناس ناگهان احساس کرد حالش به هم میخورد. همونطور نشسته روی صندلی چرخید و به موقع سطل خورده کاخس را چنگ زد. وقتی سرش را بلند کرد و دوباره به طرف مهمانش چرخید، او را دید که پریشان خاطر میان تخت و در ایستاده است، ناشناس دهانش را باز کرد که اصخایی کند. اما تغییر عقیده داد و دستش را به طرف پاکت سیگارش دراز کرد. کلی که فاصلهش را از او حفظ می کرد اما سعیداش خودش را صمیمی نشان دهد گفت. ببین. بیا بریم پایین برنامه باب از رادیو گوش کنیم. برای حالت خوبه. جدی میگم. خودت برو کلی. من مجموعه تمرم و تماشا میکنم جدی مجموعه تمر داری؟ خبر نداشتم که تو شوخی میکنم بابا کلی آرام دو قدم به طرف در برداشت گفت شاید بد راه بیفتم اشتاد اونجا مجلسه بزنه با کوب برپاست احتمالا تا نزدیکی های ساعت دو طول میکشه دلت میخواد بیایی؟ نه متشکرم. شاید چند قدمی تو اتاق تمرین کنم خیلی خوب، شب خوش تو رو به خدا به حصابت فشار نیار درباز صدا بسته شد سپس بیدرنگ دوباره باز شد ببین اجازه میدی نام ای رو که به لورتا نوشتم از زیر در بندازم تو مزخرفاتی به آلمانی توش نوشتم برام حق و اصلاحش کن چشم فعلا راحت هم بذار ماردشوی هرچی است ببرن کلی گفت باشه میخوایی بدونی که مادرم تو نامه چی نوشته؟ نوشته خوشحاله که من و تو سرتاسر سر جنگ با هم بودیم توی یه و این چیزا نوشته از وقتی ما همه جا با هم بوده نامه های من خیلی معقول تر شده ناشناس سرش را بلند کرد نگاهی به سر تا پای او انداخت و با زحمت زیاد گفت متشکرم از طرف من خیلی تشکر کن حتما، شب خوش در با صدا بسته شد این بار برای همیشه